بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والي وصحبه اجمعين اما بعد ما يك قسمتي از مسائل ايمان راسخه في القلوب به طور کلی الان مباحثی که در لغت اومده بود در اصطلاح اومده بود دلائلش یک بحث مجملی الان خواهیم داشت درباره باره اینکه ایمان کم و زیاد میشه چه دلائل ایمان داریم که ایمان کم و زیاد میشه یک از اصول اعتقاد علسانه و جماعت اینه که ایمان کم و زیاد میشه بالا میره پایین هم میاد یه موقع انسان خودش میبینه که قوت ایمانی وقتی ایمانش زیاد یک موقع میبینه قوا ایمونش کمه عدل زیاده از جمله در قران داریم ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم اياته چی شذ زادتهم ایمانا با شنیدن آیات قران چی میشن ایمانشون زیاد میشه ابزده میشه بالله ربهم یتوکلون پس این یکی از عدله سریخ بر اینه که چی ایمان زیاد میشه پس ایمان با طاعات و عبادات با طلاوت قرآن با شنیدن قرآن زیاد میشه از جمله آیات بر اینکه یا عدله بر اینکه ایمان زیاد میشه قوله خداوند باره تعالی هوا الَّذی اَنْزِلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْسَيْقِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَبُ وَيَزْزَد ایمان و یزد از نیاد بیشتر شدن تا اینکه که اونهایی که ایمان آوردن ایمانشون بیشتر بشه و یزداد الگین آمنو ایمان آیه چه سوره حالا خودتون بیرینش بیارید هو الگی اندل سکینت آیه قبل آیه سوره مایده بود درسته هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليثيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ويزداد الذين امنوا ايمانا بامشينين هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزداد ايمانا يزداد ايمانا مع ايمانه أسجل الآيات الذين قالهم لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى همين آيات دلالات بارس دره إنك إيمان زياد مشت الله كم عراج دلانون هاي قفتان إيمان كم مشت كم نمشت زيادا من درد امراض شفا حدت اونهایی که گفتن ایمان کمو زیاد نمیشه میاد مرضشون دردشون میاد از کجاست از جمله‌ای احادیث در اینکه ایمان کمو زیاد میشه فرمود رسول الله ما رایت من ناقصات عقل و ما رایت من ناقصات عقل و لو للوک به راج را راجل الحاضل واقعا مرد ض ای فنادا میفرمایند یعنی من ندیدم که یک زن ناقه ع بیا یک مرد حظم یک مرد قدرتمند را در گره خودش درگیره یک زن میتونه با هم بازی بکن باید خاطر آمریکاییستان باید مواظب خودش باشه نقصه لیکن قدرت داره از لحات ایمانی از لحا دینی و قللی ناقه. چرا ایمانش ناقص چرا دینش ناقص چون نماز بس به مرز نمیتونه میکنه در مساجد نمیتونه شرکت بکنه منطوره که مرز شرکت میکنه در جهاز، در درس و کلاس و مسائلی که ایمان ایمان انسان را زیاده که مجغلتهایی که را زن داره درکنه در با بچه ها و فنا بحث قاعدگیش نه صدرش ما رأیتو من ناقصاتی؟ اقعا الان الفاظش متعدده، یکی از الفاظ اینه ما رأيته من ناقصات العقل ودين كنت ألفت ناقصات العقل صلى الله عليه وسلم ناقصات العقل ودين إذا كنت أردت هذه الأفضل ألفت هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيد اسكي من كريديرا بعد بدستش چیکار بکنه اولش بکنه خب اگر نشو فهملم میستق فباللسانه او اگر بعد نتجه فبالقلب وذلك اضعف الله صلى الله عليه يخرج من النار من كانت في قلبه مثقال ذره او حبه خردل من الايمان يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه خردل من الايمان ايمان كم يعني كم؟ شقاده زي هيك ذره قندره النصوص ادله القران والسنه ان ان ايمان كم وزياد مشه خیلی هم سریحه خیلی هم واضح از جمعه حدیث اکمل الناس ایمانا اکمل الناس ایمانا جی احاسن هم اخلاقا احاسن هم اخلاقا کسی که اخلاقش از نهی بیشتر یک مسئله تذکر بهتون بدم خیلی مسئله مهمیه در این در حدیث ما بینید یک ایمان کامل برمیگرده به اخلاق کامل خیلی مهمه در اخلاق مسئله خارج از درس حاشیه است، لیکن خیلی مهمه. یه چیزی که خداوند در قرآن توصیه میکنه. حالا اون چیزی که برمیگرده به بالاترین نوع اخلاق. حالا هرچند که اخلاق اخلاق با خدا داریم، اخلاق با بندگان داریم. در نوع اخلاق با بندگان یکی از مسائل خیلی مهمی که خداوند بهش اشاره میکنه در قرآن اینه: "وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" ای بندگان بگو من گفته نیکوتر بهترین گفته ها را به هم دیگر بکنی خیلی مهمه ها این که از من باسه هستی مظاهر حسم خلقه حسم اخلاق نیکه حرف نیک حرف خوش بزنید یعنی میتونید بگید یک شخص بفرمایید میتونن بگید بفرمایید قدمت رو, رو چشم با یک لبخند با بهترین قول میتونید اون شخص دعوت بدید میتونید ذیرایی بکنید بهترین ها نهی که قول دی استفاده بکنید. حسن نگفت قول حسن جگییت. گفت که چی قول ولتتی احن بهترین ها بهترین الفااز. انسان نهنگ ی مثل دوسش سرپاس میکنه همسرش درفاس میکنین. ای الان کار رو با هم بکن. نه نمیتونم وقت ندارم باشه چچمشست وقت کردمش رو حتما انجام میدم. لییک مستقما نه نمیشه تو غلط کردی. وسهوی که معلمه با دانش آموزاشون یعنی تو زدن و نمی‌دونم نکوهش دادن و شما چرا این کاری کردید و چرا فلان میکنید و شما غلط کردی و شما هیچ وقت سرزنش نکونید انس میگه رسول الله هیچ وقت به من نه نگفتن سرزنش نمی‌کردن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیوه رسول الله میان در بحثم در تلحقم فهد اومد بعد جا در حدیث دلالت روی ادبی و تربیتی درش حالا این یورنیش می از به تسلیم و بحث این که ایمان کامل میشه و یکی از چیزهایی که کا ایمان رو کامل میکنه چیه اخلاق جیدونه حتماً که زنم یکی از چیزهایی که ایمان رو کامل میکنه چیه ازدواج درست نیست دین رو کامل میکنه نه که ازدواج نکردنم تو فکر خودشون باشه ایمانشون هنوز ناقصه der fikreen boşan ki imanashon kamel bokun. Khob. Azul akwal sahabe duay Ibn Masud, Allahumma Allahumma zidni imanan wa ilman wa fiqha. Allahumma zidni imanan. Aga aga ziyad nemishe, chera Ibn Masud اطرافیانش میگفت پل و منزداد و ایمانا علو مییاشینید ایمانم زیاد بشه فجذونه فی القرون امامیشه در مجلس برای ذکر خدا ما در جبل همیتور دست دوستانش رو اطرافیش میگرفت میگفت دعنه نجلس نؤمن ساعه گفتید یک ساعت بشینید به خدا ایمان و ایمان بیاین زیاد بکنید خب خلاصه این بحثی ندله صریح در این که ایمان کم رو زیاد میشه اما عدله قرآن بحث زیاد و زیادیه که خودش همونطور که سلف گفتن و آدمای قدیم گفتن همجور که صوفیان شوری میگه در بحث نقصان ایمان چون عدله قرآن بر زیاد ایمان بود میگه سو وقتی که سآل میکنن در بحث وی عزدالدین آمنو سآل ازش میکنند خب این زیادی هست کمی کجاست گفت که ما میشه این یزيد الا و ينقص چیزی زیاد نمیشه مگر کم میشه ما میشه وفعله الله الا و ند. چیزی زیاد نمیشه مگر چیزی بالا نمیاره خود مگر پایینش هم میاره چیزی که بالا بره خود به خودم پایین میاد خب این خلاصیه ادله حالا بیام بحث ارجو و مرجئ اقوالش رو بررسی بکنیم ببینیم اینها چی میگن اینها در چه سرزمینی از عمرانی زندگی میکنن چه اخباری دارن چه گفته هایی دارن که اهل سنت اومدن با مبارزه کردن کتاب هایی نوشتن و اخبارشون و قایدشون رو بیان کردن مرژه اقوال مختلفی دارن اصل خود کلمه ارجا از تأخیر میاد کلمه ارجا ارجا از چی میاد؟ از تأخیر در اسطلاح تأخیر عمل از ایمان یعنی عمل را هیچ کاره از ایمان بدونی عمل هیچ ک این عمل رو خارج رو از ایمان این بهش میگن ارجا حالا مرجه کتاری هم که چی؟ پس چی بیشه؟ اعتقاد دارن که عمل جز ایمان نیست ایمان هیچ دخ... عمل هیچ دخالتی در ایمان نداره چرا اینجاین فکری ارجا به وجود و بعد سببش چی بود؟ بحث تاریخی داره بحث تاریخی چطوره؟ چنینه که وقتی که خوارج ومدان استدلال کردن به بربودی خداوند املا یحکم بما انزل الله فاولائک هم کافرون کسی که حکم قدرت را اجرا نکنه کافر است می خودشون میدرسن دزرا میکشتن زناکار رو میکشتن می اومدن اشخاصی که گناه های کبیره انجام میدادن اونا سرشون میزدن حتی اگر زن هم حامله بود نگاه نمیکردند اومدن جلو این تقیان جلو این زیادی جلو به این غلوب در دردین رو بگیرن از جمله از اونهایی که اومدن روبرو بشن با اینها ابو حنیفه بود. و همچنین امام حمد. اومدن اینا جلو اینها رو بگیرن با رعی، با فکر خودشون و عقل خودشون خارج از نست و عدله قاتل قرآن و جونت. اومدن گفتن. جلو اینها ایستادن گفتن با جان عمل که کاری نمی کنه به ایمان. ایمان یه چیزی؟ ایمان من و شما باوقت فرق فرقی نمی کنه با گناه انجام دادن که ایمان کم نمیشه ایمان یه تیکه هست. ایمان در قلب این ایمان از بین نمی ره مگر اینکه انسان با لفظ خودش با ورانه خودش میگه من کافرم مسلمان نیستم گفت که من مؤمنم دیگه خلاص ایمانش باوقت با رسول الله با هیچ کس با عمر فرقی نداره آیا این حرفشون درسته بیامون ترازی بکنیم اول اقوالشون می خونیم بعد ترازی می کنیم اقوالشون عدلشنو بردی میکنی قول اغلا ترین قول اینها مرجعی فقه هاست همونطور گفتم ابو حنیفه و حماد ابو حنیفه و حماد گفتن که ایمان تصدیق به قلبه و گفته به زبان با قلب تصدیق بکنی و با زبانت اقرار بکنی اقرار عملی نماز کندن و روز گفتن یا شرک نیست چون عمل جز ایمان نیست ایمان چیزی درونی هستیرونی نیست و اعمال خارج از ایمانند این قول اول حال و دوم کل و جمعی است قال و جمعی اتوا ازجمع مصفبان فیلسوف اسلام فییللسوف که اومد اسلام و خراب کرد کسی که با خلاسفه هنندوز و هندی ها و یونی ها نشست اومد عقیلی مسلمان را خراب کرد جزه بزرگترین گمراهانی که نقش اساسی در تخریب اسلام دارد جهب نصطفان و جهب در هم حال در خسی میاد در روز قید قربان جهب نو درهم را زب می میگه شما زبایه خودتون را زب بکنید و منم اینو را زب میکنم می کنم زبنش در هم جهب نو درهم جهب از برمیگرده به تاریخش برمیگرده به یک از شاگردین شاگردین لبیده من اعصامی که رسول الله را صحیح کرد. واضح این آبایهود نشدن و دفیصه هایی بودن که اومدن این را تحریف بکنن. اولین کاری که کردن درباره اصحاب صحبت کردن. صحبت صحابه را تکفیر کردن. بعد از تکفیر صحابه اومدن اخراب و خدم بر نفت درستن. و بعد اومدن درباره خدا صحبت کردن. نبقید. اول واسطه بین ما و رسول الله این واسطه رو قطع کردن با قطع شدن این واسطه دین به ما نرسیده خب دین نرسیده چکار باید بکنیم؟ احسا باید خب بکنیم و در باره خدا بیگیر رو برو هر کفری که دلشون خواست هر چیزی که از این سرشون در اومد گفتن به خدا تا جایی که منصور حلاج ابن فارد ابن عربی چی بگم؟ و گفتم میگه ابن عربی میگه حتی این سگ می بینی سگم هم خداست فکر نکنید این فکر نیست نیستا تو همین جزیره خودمون تو همین بندرات باز تو همین مدارات دینی این چه این افکار هست همین چرخه فکر یکی از اونها یکی از اون اشخاصی که با اون شیخ شناخته میشه میگفت که بله چی میشه منم خدا باشم سگم خدا باشه یعنی خداوند این مخلوقات نجسو در خودش خلقت کرده لا اله سبحانه وتعالی اما یا فلون علوان کبیر سبحان الله چطور عقل بشر به انسان اجازه بده خداشو در سگ سک بیبینه سکش رو خداش بیدونه غذایی که میخوره خداشه خداش داره میخوره و خدایش رو داره, داره حض میکنه و بیرون میده نجاسات بیرون میده این خدای انسان بشه سروش الهی قمشهی و نمیدونم همه این سران دمراهی که در تلویزیون و رسانه ها و سیدی و می در بین طلب و دانش رو تاره پخش میشه عقاد جهمی آلا چیه؟ ببینید که چی گفتن آلا این اقوالشون به طور خلاطه هرچند که بیشتر باز میشه بعث اتقادهاشون در بحث جهمیه در بحثشون در ایمان چی نین گفتن؟ که ایمان فقط شناخته فقط شناخته دیگه قلب تستیق بکنه و نمیدونم این مسایل اعمال قلبی و اعمال جواره اصلا داخل ایمانی بر این ازاد اینها اومدن ابلیس را هم مؤمن دنستن ابلیس مگه چی گفت ابلیس گفت رب فبما رب بما رب اقرار کن که ربی هست یا نیست شناخ داشت درباره برای پروردگار یا نه شناخ داشت فرعون مزه دیت بالاتر بود چی گفت خدا من چی میگه درباره اش واجهدوا بها واستقنتها امکو سبغیر از دین که تصدیق و شناخت داشتن درباره خدا یقین هم داشتن واجهد بس فرعون ابیسا مسالمون پیامبران اون چه کار بکنن پس هیچ زن که میکنه اونو شخص جهمی عبادت واسش بحث قصه موسی و شبان رو میاره کجایی که چاره‌ای به بدوزم و فنام بکنم موسی میاد انکار میکنه مشت شاعران مزخرف شاعران گمراه این چیره شعر های دروغ واسه انبیا رو میبندن به خاطر چی به خاطر اینکه فکر گمراهی رو در امت تتریک بکنن موسی میاد انکار میکنه به شبان تو چرا این کار میکنی این کار این طرز عبادت نیست بعد خداوند میاد بیتی طرزنش میکنه موسی تو غلط کردی چرا این کارو کردی این بنده من داشت عبادت هم میکرد هر کاری دلش خواست بکنه هر طوری خواست برای عبادت بکنه این قول صوفی هاست زنا میکنه میگه قصدم نیکن برای خدا دارم زنا میکن تا جای که یک از صوفی ها داشت زنا میکرد یک شخصی اومد یک از طلبه هاش اومد دیست که زنا میکنه میگه چه کار میکنه گفت که اینی اصد و ثقلت هم اون سراغ ها و اون مرزه های بین من و دشمن ما و دشمنان را دارم میبندم زنا داره میکنه اینم گمراهی اینم اون اشخاص و سرانت سوابف و سوفیت میدونید این سوفی ها کی هستنالا که در امت هیچین بخنه کردن با این بدعت هاشون با این کفره هاشون و این شرک هاشون به ندونید حسنده میان خودمون و میشنوید ما که شنیدیم و زیاد هم شنیدیم و شما هم خواهید شنید این قصه موسا و شبان یکی از همین چند روز چراوسفی که طلبوها با هم بحث می میگه چرا شما این چینین حرفی رو میزنید بدعت رو این کار میکنید و خداوند سرزنش می کنه موسی گفتم ای بدبخت کجا موسی گفته کی گفته که موسی چنین گفته و کی گفته که خدا من سرزنش کرده موسی مشتش شعرهای مذخرف شعرهای بی و بی و شعرهایی که غیر از شعرهای عاشقانه و بیعدبانه چیز دیگه ندارن اومدن واسه ای ما دین بیارن وحی از شیطان واسه شن اومده بله اینو بدونید که شیاضین هم وحی میکنن بر اولیه های خودشون اولیه های شیطان هم دارید بله این ما اولیه های شیطان هستن این قول جهمیه حبول کنه نمی کنم چون چرا که از منابعشون منابع هستشون هم شعر, شعر, شعر, شعر, شعر, شعر, شعر, شعر, شعر مثلاً امن عربی یکی از دوست باغامون میگفت به هجمیره یه زن ایران میگونه تقریبا جلو توجهش میکنه یه شراعی دربت میشه میگه که میگه اصلا شاید غربی هم چیزا نگفتن بعد زمانه که این کار رو میشه تو دیگه شراعی من, من یه زن ایران میکنه یه زن ایران میکنه یا چی کار کنه همه یه شراعی همین اون نسبت رو به بابا خب حالا مثلا هر چی شما سر کله واش میبینین اصلا من قبلا معناو بهش نشستم شعرش حالا دقیقاً حدیث قبل ما چی دیگه هیچون برای قبول ندارم پیامبران فهم بی‌هدیوم دادن پیامبران بی‌هدیوم دادن ابن عربی شد وصی ما پیانبر و خدا شد گفتیم ما مشکل همینه که نمیشه واشون درو واشیم ما میگیم از خدا زمانی که بحث واش میکنید میکرشونم بس به اینجا که میگیم مذاری هست مثلا مظاهر خداست. به جایی دیگه میزنن؟ بعد دیگه به جایی دیگه میزارن. اول میگن خداست بعد میگن نه مذاری مظاهر خداست. ما نگاه بکنیم بحث منحرفین و طروف استدلال و بحث با اینها اولین چیزی که باید باید بحث کرد بحث قرآنه و بحث شریعته. آیا بشر لازم دارن شریعتی داشته باشن یا نه؟ بحث قرآن که شد و لزوم شریعت که شد و بحث قرآن که شد از الهات عقلی میانیم آیا قرآن این مسائلی درش هست؟ آیا کتاب های آسوا اینچین مسائلی درش هست؟ این باید پله پله بریم جلو پله پله باید بریم جلو و هر قولی را باید پله پله حل بشه در جای خودش چون الان مشکلی مثل از آیات و قرآن هم که بشنون جاری میدونه از آیات و قرآن بوتونی داره و نمیدونه مث اجموعاً در نزد مسلمان ها کافرند و, و صلاح الدین ایوی میاد حلاج را کردنش میزنه و جنب زرهم هم پالو در میاد همچنان این اشخاص بودن و هستند و قاهند بود این اشخاصی که برای قرآن تا جایی که مثلاً میایی جهمی الان هر کسی را برای خودش یک مذهب مسئله داره اگر اگر شیعه باشه این که لقی مصطلاه ایمان بلاید علی آیتوزدکا ایمان به بلد داری همه شده همه قرآن بد داره و بطن قرآن نیولایت بعدی اگر معتظمیه و اگر جهمیه چیه؟ بطن قرآن ایمان به عقل هر چی شد عقل تقضیص عقل تقضیص عقل ما این بطر عقلی که جلوب من گذاشتن و ما قدر عقل خودمون تالا میدونیم اینا تنین اون چیدی که ما لمس میکنیم اینها پا فراتر از اون عقل ما خودمون گذاشتن. اینها این حرفاشون مخالف با طبع بشریمون داره و مخالف با نفس قرآنی من داره. علا از دو سوز قرآنی که زیاد میاد اشتر بباحث از محصفات. الراحمن و عرش السوا و خیلی از مسائلی که هست. بحث مسائل فطری انسان. هیچ انسانی قبول نمیتونه بکنه که اون مدفوعش خداست. که اون غذایی که داره میخوره خداست این خدا هوا ای باشه این خدا سگ باشه شبهش چیه میگن که خدا ماده است یا ماده نیست اگر ماده نیست بعد همه جا باشه خدا ماده نیست در درنتیجه همه جا میتونی باشه را این کار میکنن وجود خدا رو کار میکنن بحث یک ماده این ماده کی شناخته این ماده یعنی چی ما بلفرض در وقتی که میخوابید خیالی دارید برای خودمون آیا خیال هست یا نیست هست حالا این خیال هست این خیال چیه ماده است یا غیر ماده نه ماده هست مبارزه با طبع بشری انسان ماده هست چه مادی ای؟ میگه این خیالات و توهماتی هست که پدرانت انجام دادن و در ذهنت میاد اون وقایع اونجا میگی من دیدم خودم که بالای دیوار راه میرم فردا همون چیز دستم رخ داده شما میگی اون چیزی که قبلا بوده میگه نه یک از پدرانت حتما این کار رو کرده برای این این دیوار رفته که تو رفی بابا جان این دیوار به این شکل و به این قیافه قبلا بوده که پدر بزرگم و یک از پدرانم روش راه بره من دیدم سوار ماشین میشم ماشین بیم دویلی و همین چشمشم خوابش دیدم آیا این؟ پدر بزرگان پیشینم ماشین BMW داشتن سوارش بشن؟ ماشین BMW داشتن؟ میگم نبا کنی مبارزه با فطرت بدری آیا این خیال، این خوابی که هست، این رؤیاهی که هست ماده است این ماده یعنی چی؟ عقل کوچک انسان ماده رو بله میشناسه این ماده هست، از چی ساخته شده؟ ماده از سخته هست، از درخت این ماده از آب این ماده از فلانه، این از آهن این ما ماده در حدود علم بشری خب ماورای این ماده آیا میتونی چیزی این ماده باشه؟ بله میتونی باشه آلا خدا چیه؟ در قرآن آمده خدا ماده هست یا غیر ماده؟ ماورای فکر انسانه لیزکم از مدلی شیبه هوا سمیع الوصیم فلا تدربو لیلله الامثال برای خدا مثال ندنی ابن عربی داره وصل یک دختری میکنه میگه نه من دونم خدا فلا تدربو لیلله الامثال ای بدبخت مثال خدا همین گفتم اول باید ما بیام این قرآن رو جا بندازیم نیازه به شر داریم بشر بشر شرف داشته باشه شریعت هم لازمه ی بشریته و لازمه ی بشریت وحی الهی است وحی الهی که ما الان داریم قران خدا حالا این بحث ان شاء در بحث از موصفات هم خواهد داشت قول سهم قول کلاوی و اشاعره اشعره چنین میگن که ایمان تصدیق به قلب تصدیقه و بعضی هاشون حتی که در کتباشون مثل غذالی میان جاهایی مثلا میگه ایمان نیشناخ مقصد شناخت در نزد اشاعره همون تصدیقه و این بر خلاف جهامی ها تصدیق قلب را قبول دارن میگن باید قلبم تصدیق بکنه اعمال قلبی را قبول دارن بیکن اعمال جوارح و قبول ندارن قول دیگه هم دارن قول موافق با اهل سنت هم اشاعره دارن که مشهور در مثل کلابیه و اشاعره این که ایمان تصدیخه و قلبه و اعمال قلوبم ضمن تصدیقه قول چارم قول کرامیه اتباع عبدالله ابن کرام سجستانی عبدالله ابن کرام گفتن که ایمان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 مُنَافِقَا خدا حق مدار که عذابش بده چون با زبانش گفت من مؤمنم بعد هر مؤمنی هر مؤمنی در مذهب کرامیه چی میشه هر مؤمنی هر منافقی هر منافقی مؤمنه مذهب پنجم در وقت ایمان در خلاف اهل سنت مثلا ماتریدی هست ماتریدی و اشاره تقریبا به هم نزدیکه گفتن که ایمان تصدیق به قلبه زبانم که از جمله اعمال جوارح هست زبان دلیلی بر تصدیقه دلیلی بر تصدیقه ایمان تصدیقه به قلبه و زبانم یعنی این نزدیک ترین فرقه به حل سنت ماتری دید که حنفی های خودمون احنافی که هستن معمولا مری دی هست نه که معمولا نود و نه درصدشون ال را را خارج مذهبشون چیه و منتزیله در بحث ایمان خارج و منتظل ایمان در نزدان ها ارتخاد به قلبه گفته گفتن او زبان به عمل دوواره لیکه اعمال جوارش در نزد خوارج برخلاف اهلتون نزدی کم و زیاد نمیشه اگر یک سی که ایمانت رفت بزخش شدی رفتی همه ایمانت رفت اگر یک سی که ایمانت کم شد یعنی همش رفت خوارج گفتن مرتکب کبیره در دنیا و آخرت کافر و در آخرت خالد مخلد در جهنم باقی خواهد موند. ماستذره چی گفتن؟ همونطور نه. در نزد خوارش باشه شود یک شب یک گناهی انجام داد دیگه میتونی بهش بگی کافر. زنا کرد، دزدی کرد، غیبت کرد، دروغ گفت کافری. ماستذره گفتن نه. در طریو نه مؤمنه نه کافر. منزلتون به منزلتیه. در دنیا نمیگی بش کافر نه میگی مسلمان. ولی در آخرت خالد مخلد در جهنم است. به خاطر همین در راویان حدیث ابن تیمی میگه غیر ممکنه که یک خارجی دروغ بگه. خاریجی دروغ نمیگه. خوارج دروغ نمیگن. این یک مسئله هست و در خوارج. به خاطر همین مسئله وقتی میری آمان که بعضی هستن همیشه ریش دارن، پیراهنشون کوتاه مشروب کم میخورن، مشروب نمیخورن. خیلی خوردن مشروب در میلشون کمه. چون گناه های کبیره رو کف میدونه اباضی یکی از گروه های خوارج. هم تعریف اهل سنت غیر از اینکه ایمان کم و زیاد نمیشه. خب عدل و ادله مرجئه عدله مرجه بر اینکه ایمان کم و زیاد نمیشه. مرجه به چی استدلال کردن؟ مرجه این گفتن. الان قدر اون مقدماتی که خوندیم الان میدونید. گفتن که ایمان هنی تصدیق. در لغت هنی تصدیق. و قدابندم با لغت عربی با ما صحبت کرده. درسته؟ حرفشو؟ قرآن عربی و ایمان هم در لغت عربیه نیسته. پس ایمان میشه تصدیق. عملم شریکش نیست. و قدابندم میگه و ما انت به مؤمن لنا. و هم جبور مفسرین میگن معنای این آیایه و ما انت به مصدق لنا. آیا این حرفشان درسته یا نه؟ رد اولا رد اونها بجه اولش اما اینکه که قرآن با لغت عربی پرستاده شده ما قبول داریم رو سر و چشم قرآن عربیه ما هم قرآن قبول داریم لیکن آیا الفاظ قرآن مباحث عبادیش تفسیر شرعی باید بشه یا تفسیر لغوی خداون در قرآن می فرماین اقیم و صلاح. نماز را برفا بدارید در لغتم صلاح یعنی دعا من میام دعا بکنم وقت نماز شد دعا میکنم آیا من فردم و کردم نمازم و خوندم یا نه خیر کفر اینجانی حرف بزنه کافره و خارجت ملت مسلمان نیست. چرا؟ چون نماز اون چیزی که شرع واسه من تکلیف کرده حیعت و افعال خاصی اقوال خاص اقوال و افعال خاصی که در وقت خاصی خونده میشه این نماز هرچنگ که در لغت معنای دعا ولی در شرع فرق میکنه ایمانم همینطور بلفرد اگه ما قبول بکنیم اگر قبول بکنیم که در لغت نی تصدیق بفرد قبول بکنیم در لغت نی تصدیق آیا این لفظ ایمان باید با لغت تفسیرش بکنیم یا با اصطلاح شرع با استلاح شرعی با آن چیزی که در شرع اومده حتشن که در لغت همون طور قبلا گفته شد ایمان در لغت هم تصدیق همراه چیه اقرار تثیق همراه اقرار و یقین و انقیاد و التزام دومًا وجه دوم گفته آنها که اعمال خارج از ایمان چون ایمان تصدیق و تصدیق هم در این گفته اشتباه چرا؟ گفته این که ایمان تصدیق و تصدیق در قلبه ما قبولش داریم. لیکن ما تصدیق در اعمال جوار هم داریم. اعمال جوار هم تصدیق داره. اعمال جوار هم تصدیق داره. کی گفته که تصدیق فقط در قلب است؟ تصدیق در اعمال جوار هم داره. مثال دلیل دلیلش اینه حدیثی که دار بخاری و مسلم دارین ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك لا محاله ادرك ذلك لا محاله نوشته برای اون اندازه‌ای که زنا میکنه و که دو چهار زنا میشه و نمیتونه ازش فرار بکنه حالا این اندازه چه قدره فزنا فزنا العين النظر فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي زناي تش نظره زناي زبان چیه گفتاره والنفس تتمنى وتشتهي ميل قرایش پیدا میکنه نفس الانسان والفرج فارد عضو یصدذ حد که یوک تصدیق میکنه اونگوناه اون, اون زنا یا تصدیق می کنه اون زنا ها رو انجام میده او ی یا تی پیشش میکنه حدیث بخاری شماره 5889 5 و مسلم 2657 2657 برای این شماره نیابید میتونید از کامپیوتر استفاده بکنید در یافتن این حدیث وجه ثبوت اینکه خداوند در قرآن از ایمان به معنای تصدیقی یاد کرده در فرمودش و ما انتا به مؤمن لنا ما اینو قبول نداریم چرا؟ ما گفتیم برادران یویسوف وقتی که اومدن دروه گفتن گفتن که برادرمون گرگ و خورده امر غیبی بود که پدرش دیده یا پدرش ندیده؟ پدرشو ندیده یعقوم ندیده بود عمر غیبی بود. آیا میشه در عمر غیبی تصدیق به کار برد؟ خداوند اومد در اینجا لذت شاملتر از تصدیق رو به بره گفت که و ما انت به مؤمنین لنا قلت نه پدر تو به ما ایمان نداری یعنی ایمان همراه با اعتماد تصدیق همراه با اعتماد یعنی غیر از اینکه تو تصدیق نمی کنی در این قضیه اعتماد به ما هم نمی‌کنی اطمینان به ما هم نداری همون یک بخشی که ما گفتیم ایمان در لغت هیچ وقت به معنای تصدیق تنها نمیاد بلکه تصدیق همراه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 لیکن در لغت بین بندگان میشه ایمان به معنای تصدیق اگر قبول داشته باشیم که قبولش نداریم میشه به پار برد اعتمام بدیم یا حالا این مسئله هم بازم میگم حالا شبهه ثبوم هم این شبهه اولشون شبهه ثبومشون رو میزنیم درس برای درست بعدشون خیلی طولانی شبهه دومشون گفتن که اگر ما بگیم ایمان اعتقاد و عمله سبب میشه که ایمان حقیقتی مراکب بشه آب بلاوی بنزین آب بنزین میشه شکر بلاوی آب آب شکر میشه مخلوق میشه درسته؟ میگه اگر ایمان بگیم که اعتقاد و عمله میشه حقیقتی مراکب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 یا به حروفش، بنویسید مثلا به حروف رو نویسید ده هرابردارید همه از زمیر یک دیکش رفت همهش رفت یا دانش موند دانش موند همهش درست این کلمه یه ده بنویسید عددش صفرش رو بردارید یکیش موند یکیش موند شما که دارید دیگه اگه یک دیکش رفت همهش میره ما در واقع اون چیزی که چشممون میبینه اون چیزی که یک دیکش بره همه, چیز همه چیزش نمیره حالا چه اسمش باشه و چه ذاتش باشه اگر یه چیزی یک دیکش بره همه چیزش نمیره پس اگر یک شخص مؤمنی گناهی انجام شد انجام داد چی میشه؟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 دیگه به اون شخص انسان نمیگی پس این مثالی که وردن یه چیزی یک تیکش ر همش جش رفت یک حقیقت ممراکبی هست انسان هم حقیقت مرابی روح با جسد روح و گل یه تیکش کسیکش ر همش میره خیر مگر ایناتست به طور کلی بر اینکه جسدم بمون حالا به ارزش باشه انسان انسان انسان از بین بره خب این خلاصه یه بحث شبهات مرجعه که ان در الله آینده ساینجه شبهه دیگری خواهیم داشت در بحث شبهات مرجعه که سوالی شده داریم را بحث سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك بارك الله فيك